صوره همزه آه. بسم الله الرحمن الرحیم بنا الله که بخشایند و با رحمت است ویل لکل همزه لمزه وای بر هر هر زبان عیب جوی مسخره کننده الذی جمع مالی جمع کرد و شمارش نمود یحسب ان ما لهم اخلد و پنداشت ک آن مال جاودانهاش میکند کلا لینبدن فی الحطمه اینچنین نیست که پنداشته است او را در هتمه اندازند وما ادراک الحطمه و تو چدانی هتمه چیست لا الله المقدا او شيء بر فروخته الهی است الاتی تطلع علی الافدا که شولاش بر قلبها ها است ان بها علیهم صدا آنها را در ماصری خود گرفته است بیاد مد مدد درسه هاگی و راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله